بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأمبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا مسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم وخشوني ودليل العنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسهموا له ودليل الإستعانة قوله تعالى إياك نعبود وإياك نستعين وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله قبل أن أجيكم شبخون ما جلسة قداشته وزيه اشتادين بحث روغراويش عن بود إنهم كانوا يسارعون في الخيرات إن روغراويش الفنبوت كما قلت دعار شناز دعاي مسألاتشون شن از شن أسباب الرهبات فوته رهبات ترس أسخداب بوته بخشول داشته و مسئله‌ای که رب داره به مسئله قبلی بحث ترس و خشیت از خداونده اونجا گفتیم ما معلیف تک تک مسائل که کرد از ترس از خدا از محبت خدا از توکل بر خداوند از رجوع به خداوند انابت به خدا توبه و خشیت نوعی از اونها هست میخواد ثابت بکنه که اینها مال خداونده و خداوند فقط مستحقش هست اینجا خداوند نه میکنه از ترس از غیر خودش فلا تخشوهم هم خشوی خشوی امر به که ما ترس از خدا داشته باشیم اونم چه نوع ترسی ترس خشی با ترس مجرد خوف فرق میکنه یعنی اون ترسی که در خشی نهفته از فرق میکنه مثلا خداوند وقتی که در قرآن میگه انما یخشى الله من عباده العلماء یخشا اینجا خشیه که عالم داره بر چه اساسی بر اساس تعظیمش یعنی اون ترسش حقیقیه واقعیه یعنی ایمان و اعتقاد داره به عذابش به عقوبتش به قدرتش مثلا بالفرس شاید یک شخص از یه چیزی بترسه مثل سوس یعنی سوس که دور دور دور سوس سوس سوسو ما میترسه ولی مبناشیه مبناش تعظیم سوس نیست مبناش اینکه که سم داره نیشش میزنه نیست یک واهمه هست اون ترسش یک واهمه است حالا یا بدش میاد از اینکه بزن بالپست شاید مثلا کتیفی به پاش چسبیده یا از اینکه بقول قول از شکل قیافش بدش میاد یا اینکه از بچگی بهش اون رو ترسوندن ولی ترسش واقعیت نداره حقیقت نداره در ازای تعظیم نیست اون ترسی که در ازای تعظیم باشه میش میگن خشیه در ازای علم اینجا مثلا عالمه ترس داره چرا ترس داره از خدا چون یقینا قبول داره که خدا خیلی عظیمه چون خدا را شناخته چون علم به خدا داره ازش میترسه انما یخش الله من عباد پس اینجا وقتی خداوند از ما میخواد فلا تخشونی فلا تخشوهم تخشو وخشونی از از اونها نترسید یعنی میخواد نفی قدرت نفی تعظیم از اونها بکنه از بوت و از مشرکی و میخواد برای خودش حصر بکنه وخشونی تأکید میکنه و عم میکنه از من به تأکید اما آیه بعدی و دلیل الانابت قوله تعالا و انیب الى ربکم و اسلم له و انیب الى ربکم اصل انابت رجوع بازگشت به سوی پروردگار بازگشت و رجوع به سوی پروردگار اونم از ته قلب با توجه با روی آوردن با زبان و قلب نهی که تنها فقط انسان بگه حالا من رجوع میکنم زبانا اعتراف بکنه خیر. همراه این توجه همراه این رجوع رجوع قلبی هم باشه انابت باشه خداوند در قرآنش پیامبران خودش رو مدش ستایش میکنه بر اینکه که انابت داشته مثلا در بحث شعید میگید علیه توکلت و, عل و, عل و علیه اونید علیه توکلت بحث توکل اعتماد علیه توکلت من متوکر قبلم بست توکل رو مفصل کردیم اینجا توکل را رفت میده با چی؟ با انابت همراه اعتمادی که دارم به توی پروردگار قلبا به تو انابتم میکنم رجوعم میکنم یعنی با قلبم رجوع بهت میکنم به سویت باز میگردم اعتراف به گناهم میکنم و همراه به اون اقرار به عبودیتت میکنم این بحث بحث انابت همونطور که خیلی از علما میگن در تفسییر انابت معانی ترس، معانی محبت معانی واهمه و دیگر مسائلی که قبلا گفته شد همه اینها رو دربر میگیره وقتی کسی یک شخص انابت میکنه نرجوع میکنه از صح قلب و فقط خداوند فقط به خداوند رجوع میکنه یک مزیتی درش هست که بین دو تا چیز جمع کرده با خودش بین محبت بین حب خالق و ترس از خالق به خاطر همین خداوند در قرآنش ابراهیم علیه السلام را مدح میکنه ستایش میکنه برای این وضعی که داشته میگه ان ابراهیم لحلیمون اواح منیب لحلیم بردباره اواح دلسوزه اواح دلسوزه همیشه نسبت به اون اطرافیان الا مشرکین و خیلی دل بوده که اونها را بر بگردونه به ثبت اسلام نجاتشون بده از عذاب خداوند و به رجوع کننده است به خداوند قلبا این اهل عبادت بوده اهل خشوع بوده اهل ذلت بوده در مقابل خداوند فروتنی بوده یعنی این رجوع با فروتنی این رجوع با زلت همون تو که در معنی خشیه و خشوع قبلا اومده بود بحث بحث اینه که ما وقتی که سربت سجد ميزاریم یا سربت رکوع ميزاریم لذت داریم از اون سجودمون، از اون رکوعمون. مون سبحان ذل الجبروت والملکوت والخبریاء والعظمه تعذیب در اشتاس سبوح قدوس رب الملائکه والروح. سبحان رب الاعلا وبحمده، سبحان رب العظيم وبحمده. اینا معانی ذلت فروتنیه، رجوع به خداوند پروردگار رو تو فقط فوق منزعی برای همین رسولان اصلا علیهم لذت می‌بردند از این انابت و رجوع روش انبیا که خداوند در قرآن در سوره انعام و دیگر سوره ها توصیه میکنه به رسول الله صلی الله علیه و که راه روش این انبیا را طی بکنه طی بگیره این راهش رو ادامه بده الکالذین هدا الله فبهداهم مقتدی راه اونها را بگیر راه ابراهیم که منیب بود اهل سجده بود اهل رجوع به خداوند بود همیشه به سوی خداوند بر میگشت باز میگشت اگر بناهی انجام میداد اگر تقصیری انجام میداد الان شما نگاه بکنید ما در نماز میعیسیم الحمدلله رب العالمین آیا معانی روبیت خداوند در ذهن خود, خود منطورش میدیم این روبیت یعنی چی؟ یعنی که ما خبزه به دست خداوندیم و اینکه خداوند ما را خلق کرده آفریده نعمت گوش و شنوایی و دیگر نعمت ها به ما داده آیا اونطوری که این معانی درک بشه و معنای عبودیت در ما بیاد آیا واقعا اومده الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم یا این که ما مقصرین فقط مرور میشه دور میشه و معنی خشوع و معنی خشیه و ترس از خداوندی که علماء دارن و معنی انابت در ما و چیزی که واقعیت تلقی که ما باید بپذیریم رسول الله صلی الله علیه و قیامش در نماز و قیامش در رکوع و قیامش در سجده شبهی متساوی بود این نبود که قرائتش طولانی باشه سجده و رکوعش کوتاه باشه همونطور که ما در احادیث داریم رسول الله صلی الله علیه و سلم بنده با ده بار میگفت بسط رب و به حمده ولی ما سه بار بگیم میون بالا این, این اشکال در درست وصفه گفتن اقل جم ست تا هست تا انسان باید هر ذکر زکر و و ستا کافی میشه ولی ما در احادیث هم تو در صراغی رسول الله صلی الله علیه و آله بیش از ده بار سبحان ربی الاعلی را می گفتن بحث معانی عبودیت بحث معنای عنایت درک معنای انابته رسول الله صلی الله علیه و وقتی که به بلال میگه ارهنا بها یا بلال چون معنی منیب بودن را در کرده که ابراهیم کتور منیب بوده لذت می‌برد از تن به سجده در دادن سر به زل در دادن هم به ذلت در میداد سر به سجده می‌ذاره نمیخواست از سجده بلند بشه و به خاطر همین هست که خداوند میگوید اقرب ما يكون و اقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد ما ذکری که بنده به خدا هست که معنای انابت معنای و معنای خشی در هست در کجاست در سجده اونجا هست که به پروردگار نزدیکه اونجا هست که خدا را صدا میزنه فریاد میزنه و رسول الله صلی الله علیه دعاهای را می کردن که به ما یاد میده ترس یلی چی؟ خشوع یلی چی؟ رسول الله صلی اللہ علیه وسلم در سجده چی بی اللهم این اعوذ بر رضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک ترس از خدا هستن این معنی نیست اعوذ بر من سخطک از سخط خداوند، از نخشنودی خداوند به خدا پناه می بود از نخشنودی پناه می از نخشنودی و بمعافاتک من عقوبتک به خداوند. از عقوبت خداوند به چی؟ به سالم به نگه بداره سالم او را نگه بداره و اعوذو بکنم نیمسی این معنی عبودیته این معنی انابته این معنی طرف از خداوند، این معنی خشیه هست که خداوند درزمون خاصه و خیلی هم جالبه اینجا مثلا بالفرس ما مثلا داریم در بحث خشیه مثلا وقتی که خداوند مثال میزنه در بحث شعب عليه السلام میگه علی توکلت و الیه انیب خب اینجا ما داریم که الیه جار و مجروره تقدیم شده بر فعل وقتی که جار و مجرور چون در اصل در اصل بچینیم باشه اونی و الیه اینجا الیه تقدیم شده همونطور که ما در قضیه قبیله تو کانو لنا خاشعين کانوا لنا خاشعين یعنی کانو خاشعین لنا در اصل اینجا و مجرور باید چی میشد باید بر اسم فاعل که خاشعین حزی اسم مفعول باید متأخر میشد خاشعین لنا نمیشه بلکه تو خداوند میخواد خشوع به همچنین اینجا خشیه را در خودش فقط حصر بکنه که فقط باید بگه اعتمادت به من باشه رجوعت فقط به من باشه و دیگر وسایل فقط تو به عنوان یک وسیله ازش استفاده میکنی خداوند این ادوات حس را به کار برد یعنی کاملا و تماما باید خشوعت باید ترست خشیعت و انابتت فقط باید به سوی کی باشه به سوی پروردگاره یعنی بالفرض اگر از فلانکست فلان فلانکست مثلا کمکی میخوای امدادی میخوای میخوای کمکی ازش به طلبی اول مثلا بالفرض توی ذهن خودت این داشته باش که اگر خدا توفیق بهداد اون کار انجام میشه قبل از اون مثلا بالفرض وقتی که میخوای بیری کلاس یا میخوای مثلا بالفرض فردا دعوتگر بشی دعوت بدی در سجده از خدا بخواه اللهم رب محلی سطری و سرلی امری از خدا بخوا. از خدا وقتی که طالب علمی همیشه در سجد از خدا بگو اللهم انی اسالک علم نافعه از خدا همیشه بگو علم نافع خدا بهت بده همیشه از خدا کمک بتل اینه نباشه که فقط بگی آ من طالب علمم میام سر کلاس نه همراه با با انابت و رجوع به سمت خدا باشه از خدا کمک بگیر که خدا کمکت بکنه در طلب علم این معنی زلت رو در خودت بیار این معنی فروتنی این معنای بندگی رو در خودت بیار این بندگی هست وقتی که انسان رجوع میکنه به خدا چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم دای استخاره رو یادمون میده؟ اگر شما خواستید یک کاری انجام بدید استخاره بکنید اللهم انی که بعلمک بشیر بعلمک بسم الله وقتی ما ابتدای درس این متن رو شاهد بدین با چه معنا میاد با معنا استعانه ما کمک میجیم پروردگار را به علمت اللهم انی که بعلمک قدرتک به علم قدرت خداوند انسان استعانت میجویید پس انسان وقتی که یک کاری میخواد انجام بده اون کار خیرش استعانت به جویه به خاطر همین ما در میگیم بسم الله ما در لباسو شده میگیم بسم الله ما در رفتن حتی به خلا میگیم بسم الله اللهم این اعوضه افراد من الخوبتی والخبائه این استعانت کنن به خداوند. این انابت و رجوعه به خداوند بند هرچنکه انابت خودش معنای فراترت این رو داره و اونم معنای گفتم رجوع قلبی و پشت دادن به وسائل دنیایی که خدا قرار داده همراه با خواستان همراه با خواستان این انسان به زبانش هم بیاره رجوع خودش چرا دعای زنون دعایونس علیه السلام بهترین دعا هست سبحانك اللهم. اللهم لا اله الا انت سبحانك اینی کتب من ظالمین اللهم لا اله الا انت سبحانك این کلمه سبحانک. خودش اعتراف به گناه رجوع به خداوند که رسول الله صلی الله در حدیث صحیحی دارین کسی نیستی این دعا را بکنه این ذکر رو بگه مگر دعاش اجابت بشه در سنن ترمذی دارین و همچنین در روایت دیگه صحیح هم داریم کسی هست که رو بگه مگر خداوند غمش رو حل بکنه چرا چون در اعتراف میکنه به درگاه الهی داره رجوع میکنه که پروردگار رو تو فقط پاک و منزه است سبحانك انی کنت من الظالمین اعتراف میکنه من ظالمم من مقصرم این معنای تخسی درش هست این معنای کمال رجوع شد که انسان به تفثیر خودش اعتراف بکنه به همین انسان وقتی که از نماز سلام میده چی میگه؟ سفر الله، سفر الله، استغفر الله. در مقابل چی؟ سوار میگه این خزیر رو تکرار میکنه. چرا؟ چون درش در اون عبادتش تفثیر اومده. نقصان اومده. خودش هم میدونه داره رجوع میکنه به خداوند و پناه میبره از اون تفثیراتی که داشته در اون نمازش. حتی که بحث عنابت و تسلیم شدن به اوامر الهی دو قسمته و معنی به الى بکن و اسلیموا یک انابت ما داریم رجوع به سمت خداوند داریم در مسائل کونی داریم که انسان رجوع بکنه در مسائل دنیایی به خداوند و اینکه تسلیم امور کونی خدا بشه هایی که میاد تسلیم امر خداست فرزندی فوت میکنه فدری مادری رجوع بکنه به خداوند سپ بکنه اعتماد بکنه به خداوند بگی ان لله و انه الیه این تسلیم کونی هست بنسبت اوامر اوامر الهی رجوع بکنه به خداوند و موله و بحث ما بیشتر رب دادن انابت با اسلام و موله یعنی خداوند در مقابل این انابت ازمون استسلام خواسته شمایی که الان رجوع به سمت خداوند از مخاطب رجوع بکنید به سمت من لازمه این انابت شما چی هست و انیب الی ربکم و اسلموا و تسلیم بشید و اسلموا له یعنی چی با تسلیم بشید برای خداوند تسلیم بشی در مقابل تقدیراتش و تسلیم بشی در مقابل مأمور اوامرش در مقابل امامر شرعیش تسلیم بشید این راجبه لازمه, لازمه ای انابت یعنی فکر میکنی که من میگه که من توبه میکنم من استفمار میکنم من نماز میخونم بعد دست به دا انسان بر نداره و بعد راضی نشه در مقابل تقدیرات و تقسیمات خدا این شخص ایمانش نمیگم از دست ایمانش ضعیف شده حتی اقلش. همونطور که خداوند میگه میگه به رسول الله صلی الله علیه و سلم كي خطاب بكونه فلا وربك لا يؤمنون فلا وربك كما يقرب بفروردگارش اون فروردگار رسول خداست که پروردگار همه مها است فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ده بئ فيشن حاصل میشه اختلافات کی پیشنیات باید به تو بر بگردن اگر بر نگردن و تسلیم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت یعنی در مقابل اوامر الهی تشریع الهی باید تسلیم بشی و باید قلبا راضی باشی و يسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت حرجنا، سحرجنا مما قضيت ويسلم تسليما، وكاملا تسليم شد. يعني إيمان حقيقي إن إيمان حقيقي. إنابته، همراه بوجيه، همراه بتسليم شدنا بأبامير إلهي. كناش قلتي في همرين خضابودنا. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. استعانات هو مجرب الثلث. دراس. نتع هكما گرفتن شما گرفتن همراه با ذلت با فروتنی شما یاد دارید یک مسئله ای که ما قبلا گفتیم فرموده خداوند وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احد بان المساجد اینجا مسجده جایگاه چیه؟ جایگاه پرستش همونطور که اینجا جایگاه پرستشه یعنی نماز را برای غیر خدا نمیخونی فلا تدعو مع الله احد غیر از خدا صدا نزن فریاد نزن اینجا هم همینطور. ایات ایت یا که عبادت را اول و اول بحث چیه؟ و ان المسجد لله ان المسجد لله که عبادات فقط برای خدا باید باشه با قسمت دوم و یا که انسان چون استعانات معلومال با با طلب درخواست یا با یا استعازه هست شما گرفتن برای نجات یا برای یاری هست انسان برای یاری خدا یاریش بکنه خدا همکاری همکاری باهاش بکنه خدا کمکش بکنه اینجا معانیش الان مختلف میاد الان بحث استعانه و استعازه میاد بحث اسفحانه که الان داریم بعد بحث اسفحازه هم خواهد اومد پس اینجا بحثی خدام میگه ایاک نعبود زمین منفصل و تقدیم میکنه اینجا بر نعبودو که فعل هست که عامل کی هست عامل ایاکه هست ایاکه زمین منفصله در, در محل نس مفعول اون بهی که تقدیم شده و تقدیم اینجا هم باز هم مثل بسیل قبلی تقدیم زمین منفصل اینجا بر مفعولون بهی دلارت بر چی میده دلارت بر حسر یعنی تمامی عبادت فقط برای الله باشه در ازباد باشه نعبد و ایاته بلی اینجا چون تقدیم شده میخواد خداوند حسر را برسونه یعنی فقط باید خداوندی یکتا عبادت بشه و ایاته نسعین بازم همینطور نسعین و ایاک اینجا ایاک تقدیم شده برای حصر و قسم میگن برای حصر شدن و قسم این اکتساب شدن یعنی منحصر به فرد شدن خداوند یعنی فقط شما از خداوند به خب الان ما الان اینجا خداوند فقط میخواد ما بهش رجوع بکنیم فقط ما ازش کمک به تلاوتیم. اصل سعانت اینی کمک جستن. گفتم با فروتنی خب الان مگر ما خداوند در با قرآن نداریم که میگید و تعاون علی برر و تقوى تعاون بکنید یعنی کمک بخواهید از همدیگر برای نیکی ولا و لا تعاونوا علی الاثم والعدوان تعاون در اثم و گناه حرامه ترامه و در امور خير در امور عبادت چیه مستحب به جهاتی هم و تعاونوا علی البر والتقوى التقوى و چیزی که الان تعاون ب... هم مجلس شما تعاون بر بر و بر تقوا هست تا ببینید شما جستن عون در شر اونجا یک نستعین استعانات از اون دیگه میاد در خواست درخواست در کمک چرا اینجا میگه و تعاونو اینجا میگه تعاون بکنید اونجا میگه فقط تعاونتون مال من باشه اگر عون خواستید کمک خواستید فقط از من بتلبید جایی که از دست مخلوق بر نمیاد فقط از دست خالق بر میاد کمک خواستن از مخ مخلوق امری تباه هست امری بیهوده هست مثلا بالفرد انسان از دیوانهی کمک به طلبه مثلا بالفرس بیاد یک شخصی دیگه که مثلا بالفرس الحمدلله رب العالمین را از دیوانهی بخواد که برای من اعراب بکن این دیوانه نیست؟ دیوانه است. یک جایی از پس مخلوق بر میاد مخلوق میتونه کمک بکنه که خداوند اینجا بهمون چی میگه و تعاونه علی البقل و التقوه یک جایی از دست مخلوق بر میاد زنده هست میتونه کمکت بکنه. جایزه ازش کمک به تلویزیون و جاهای هم حرام میشه اگر در حرام باشه جاهای اصلا درست شرف نیست از دیوانه کمک خاصن در یک کاری که ازش برنامه‌میاره یا از یک بچه توی چاه افتادی بچه ای بالای بچه دستم بگیر من بالا بیان اون دیوانگی هست اون بچه رو هم توش میندازی بچه رو هم خلاص می‌کینی حرام این درست این کار این کار دیوانه‌بازی هست یک جاهای هم در تهاروز با این استقامت انسان از مرده‌ای که مت بخواه، اون مرده‌ای که قادر نیست کمک کمک بهش برسونه. حالا میخواد تبرک باشه، میخواد تمائم باشه. از یک چیزی که وسیله نیست، وسیله قرار ندیم باعونادس بخواهد. این درخواست کمک بکنه، تمیمی رو ببنده، کمکش بکنه، مثلا دفع بیماری بکنه، نمک آویز بکند در خونش، آب دریا را آویز بکند در خونش، تا غلط دفع حسادت میکنه. تا چش زخم بکنه. الان رسم توی ماشینا چش رو آویز می‌کنن به نقره رنگ، می‌گن چش زخم رو دفع می‌کنه. خب این داره اصلا؟ نمک بیس کردن آب نمک این کمک خاصر از خداوندی از مخلوقه آیا از این پس این مخلوق برمیاد چون اسباب ما اسباب یا کونی داریم یا اسباب شرعی یا سبب کونیه مثلا بلفاصله ما میبینیم نماد توی آب بریزیم شور میشه یا قند بریزیم کسی مثلا فشار رفته سفطه بالا میذاریم میبینیم قند بریزیم توی آب قندش پایین میاد این علم تجربی علم کونی ثابت کرده این قضیه یا سبب شرعیه مثلا درساز شعر گفته که اگر رقیه بکنی شفای بعضی از مریضی ها هست از مثلا البته رسول الله میگه سوره هایی بعد من نازل شده قله الله قله قرا دا داد ما مریض رو شفا نمی خودش نمیکنه مگر اینکه تلسش باطل بشه اینها اسباب شرعی هست حالا نماز یک وسیله شرعی هست دلیلی اشارعی که نداریم یک وسیله کونی هست کونن ثابت شده که دفع چش زخم میکنه یا نه نه ثابت نشده. چطور ثابت میشه آیا چون به فلان شخص بزن چشمی رسیدی ثابت میشه یا فقط ممناش خرافاته اینجا استعانت به غیر هست که این استعانت یا میشه شرک اکبر یا میشه شرک اصغر اگر بذاتش مثلا ما با تبرک بشیم به اون ذریح یا به اون قبر دست بهش بکشیم کفر اکبره چون از اون چیزی که سبب بیست و خداوند خدا نفی سبب ازش کرده در قرآن داریم نقشش میگنی و یه جور هست نه عنوان یک وسیله نامشروع مثلا بالفعل این چشم گذاشتن توی این ماشین چشم میذاره یا نمک آویز میکنه اینا شرک از غره. چون به خودش گنوانی که متبرک هست اثر فلان ولی هست به ذات خودش ما متوصل نمیشیم بلکه چی؟ بلکه به اثرش مثلا میگیم که یک سببی خدا قرار داده توی این نمک که در اچش زخم میکنه اینجا استعانت جستن به اینچین این چیزها شرک از غره. و با باید معاذب باشیم ادامه داره در, در همین بحث استعانه و استعازه فقط یک مطلی موند از بحث استعانه و اونم این که در بحث استعانه به خداوند و یا کنستعین خدا راه های استعانت به خودش را به همون یاد داده مثلا خداوند در قرآن میگه استعین و به صبر و صلاح استعانت بجید با صبر و نماز یا مثلا به فاز راه‌های توسل توسل بحثش ب... بحس... مفصل است بحث توسل بهمون یاد داده که متوسل بشیم و استعانت بجوییم به با اسماش با صفاتش با افعالش اللهم صل علی محمد علی علی ال المح... مع كما صليت علی ابراهيم علی علی ابراهيم یا توسل بفعل استعانت ما استعانت بجوی در قبولی اعمال و مسالکات رسول الله علیه و سلامه واستعین بالصبر والصلاه تا که اینجا نماز تقرب به خدابنده و ب... خواستن حاجاتمون با متوصل شدن به نماز استعالت کمک گرفتن اینجا عبادت اگر اینها سرفشه به غیر خدا میشه یا شرک اکبر یا شرک ازدار انشاءالله این بحثات بفتن بازم من زدامه داره و آخر درمون الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و عالمین